هم. جمهوری ایرانی چیست مسئله ایرانی بودن مسئله ملیگرایی نیست ایرانی با مسئله ناسیونالیسم که در اروپا تر شد بسیار فاصله دارد ایرانی یک فرهنگ مردمی و جهانی است این فرهنگ ایرانی محتویاتی دارد که از همین درست از همین ایرانی بودن معین می شود ایرانی بودن برای ایرانی بودن مسئله فردیت فوق و مهم است مسئله این است که حکومت بر پایه افرادی که خودشان راه به سوی حقیقت را میجویند بنام می شود در فرهنگ ایران حقیقت در راه راست نیست حکومت با آینی که سرات مستقیم است یا دینی که راه راست است ساخته نمی شود. یا مکتبی ایدئولوژی که یک سیستم فکری درست کرده است بر این بنا شود این مفهوم راه در فرهنگ ایران پوغلاده مهم است. مفهوم راه برای ما معنای دیگر دارد که در فرهنگ ایران داشته است. مثلا شریعت اسلام خود را سرات مستقیم می داند. حکومت را می‌خواهد بر پایه سرات مستقیم بنا کند. زردوشتیان نیز آموزه زردش را تنها راه راست می‌دانند. سیستم‌های فلسفی و ها نیز خود را به شیوه دیگر تنها راه راست می‌دانند. آنها ایمان به عقلی دارند که مانند الله و یهوه و پدر آسمانی خالق راه راست است. این ایدئولوژی یک مکتبی است که می از با بر پایه خرد یک سیستم بسازد که تمام اجتماع به اون سیستم ایمان داشته باشد. ما هم هنگامی به فکر جوت جومی افتیم، دنبال یافتن راه راست هستیم. چرا؟ تر دنبال راه راست هستیم؟ از همین جا مسئله اشتباه شروع می شود. ما یعنی خود ما می دیم دنبال یک راه راستی رو پیدا کنیم که همیشه در آن بمانیم. ما دنبال راه راست میفتیم این اشتباه جستجو چیست؟ جستجوی حقیقت معنیشین شده است یعنی جستجوی راه راستی که بیش دقدقه و نگرانی و تشویر خاطر از گمراه شدن آن را بپیماییم راه برای ما نه جایگاه جستجوست نه در خود مقصد است بلکه اونسه رو جستجو به قاید از, از این راه زدوده شده است وقتی که ما دنبال جستجوی راه مستقیم هستیم از همون آغاز این بنیاد ما در راه, راه جستجو نیست بلکه راه رسیدن به یک قایت است. ولی عرفان برای اعتراض این اندیشه خام راه های مقصد یا اصل یا خدا را به تعداد افراد انسان دانست این ایده را ناچیز نا نکنیم این ایده خیلی مهم است از این خیلی سوء تعبیرها شده است و سوء استفاده شده است ولی اون ایده اصلی که بر فردیت انسان بنامی شود او همیشه مقشوش ساخته می شود راه ها به مقصد و اصل به تعداد افراد انسان هر کسی را ویژه خودش را به مقصد دارد. هر کسی راه ویژه خودش را به مقصد دارد. به یک راه و خیابان عمومی، یک شاره عام که همه باید به آن بیایند و در آن به یک مقصد برسن، وجود ندارد. درست؟ این نفی شریعت هست. نفی یک ایدئولوجیست. نفی یک مقصد است نقل یک مکتب به طور کلی بر برای اساس حکومت این اندیشه که به کلی بر ضد شریعت و همه راه های مستقیم است چون این راههای مستقیم راههای عام شارع عام میخوان درست کنند چون این اندیشه چنان مخرب و پریشان ساخته شده است که هسته بنیادی آن به کلی از انداخته شده است این ایده که هر کسی خودش راه به حقیقت را میتواند بیابد این ایده فردیت انسان است ما این ایده را به راحتی نباید که در فرهنگ ما رشت کرده است به راحتی بگذاریم از ما با این سوء تعبیرات بگیرن این اندیشه که هر فردی راه ویژه فردی خود را به اصل یا به بون یا به خدا یا به حقیقت دارد به کلی بر ضد اندیشه سرات مستقیم و راه و راست است که خیابانی برای راهپیمایی همه در آن است طبعا هر کسی نمیتواند راه ویژه خودش را برود در راه عمومی رفتن با راه فردی را در آن جستن با هم سازگار نیستند این اندیشه عرفانی که سپس به احادیث اسلامی ارهاق شد به تصویر از خدا باز میگردد که خودش یعنی خود این خدا بون و آخشیج یا عنصر اولیه انسان و با تصویر الله و پدر آسمانی و یهوه و اهورامزای زردوش فرق دارد بلکه متعدده با آنهاست حالا این خدای ایران ارتا بوده که به نام سی مشهور شده سی با مرغ مرقه یعنی اصل همیشه نو به چمن هم مرغه میگوین یعنی اصل پرشگرد یعنی همیشه سبس شدن همیشه از نو تبس شدن سیمرغ معنای اصل همیشه ثبت شونده دارد. این خدای ایران ارتا خوچه که تخماش افشانده می شود این تخمش هم ارتا هستند این همون هوچیتره یا همون هجیر ما این خدا تخم می شود. تخم خوب می شود هوچیتره یعنی تخم اصل خوب در هر انسان این آتش جانش این ارتاست یعنی این تخم خداست خدا چی می شود؟ این خیلی مهم است خدا اصل تنوع و کسرت می شود این تقمه خدا هر کدامش دیگر گونه است هیچ کدام با هم یکی نیست این ایده خیلی مهم است خدا دانه های با هم و یک شکل نیست بلکه خوچه تنوع و کسرت است خدا در یک آموزه سبز نمی در یک شریعت در یک پیغمبر در یک حقیقت پیدا نمیشود خدا در همون مرحله اول تحول مییابد به تنوع و کسرت این یکی از بزرگترین ستونهای فرهنگ ایران است فردیت پیدایش گوهر خدایی در قنای تنوعش است خود در تنوع بیشماری که دارد عرج خدایی دارد اینجا فرد اصالت خدایی دارد همه فرد فرد انسانی اصالت دارد این رو می گوین عرض انسانی Dignity of human being برده منشن برده منشن برده خود در تنوع و بیشماری که دارد ارز خدایی دارد تنها بر ضد خدا نیست بلکه نشان قنای خدا در تنوع است از خود بودن از خود روشن شدن از خود به بینش رسیدن و راه خود را رفتن ضد خدا شدن و سرکشی کردن از خدا نیست بلکه درست واقعیت دادن خدا در رنگ آرنگیه شد خدا سیمرغ که ارتا باشد اردی بهش ارتا باشد تمام این واجه این نام او در همه هنوزم در ایران است اردبیل اردکان شیر تمام اینها اسمهای این خوداش خدا که اردها باشد خودش رت رس هست این این ا این علفه شو بیان دیدید رتا راس رتا این را با در پهلاوی شده از رس خدا چی هست اردها رت رس رس چی, چی؟ یعنی راه یعنی گردونه. ار هم راه است هم گردونه است. خدا خودش که بون هر انسانی هست راه است. هر فردی در خودش راه و گردونه خودش هست ارطوام مفهوم کلی راه یعنی همه راه ها هست. نه یک راه به خصوص و ویژه‌ای نه یک راه برگذیده این آموزه یا شریعت یا احکام یا کتاب خدا نیست که تنها راه مستقیم برای عموم خلق هست بلکه خود خدا خوه همون سبه در سانس کردید یعنی از خود یعنی قائم به ذات این ارتب مستقیما بونه هر جانی یا فطرت هر انسانیست ببینید این فطرت انسانی در فرهنگ ایران چه تفاوتی از پر از اسلام شریعت اسلام یا یهودیت و مسیحیت دارد ارتو مستقیما یعنی راه بونه هر جانی یا هر انسانی هم راه و هم گردونه یعنی اصل جنبش است این تخمه خدای آتشجان که ارتا باشد رتا باشد خودش در هر انسانی به طور جداگانه اصل حرکت و آفرینندگی و روشنی و بینش می شود این خود رتا عرابه دو تا چرخ داره دیگه دیگه است قسم رتا که حرکت پا دو تا ما دو تا پا داریم تس خود ما اصل حرکتی تمام وجود ما را در فرهنگ ایران به همین گفتی چشم دو تا چشم که با هم همکاری میکنن میبینن گوش ها دو تا دوتا ها دو تا دست ها این تمام, تمام حتی اعضایی رو که اندام هایی که به ظاهری که به نظر میرسن اینها ترکیب دو تا خدا میگیرن جگر دل دل ها ارده دل اردر یعنی سیمور جگر بهمن است این خخم خدا یا آتش جان که خودش در هر انسانی به طور جداگانه اصل, حکرو، حک، اصل حرکت و آفرینندگی و روشنی و بینش می شود پیمودن راه،, پی راه شیوه خدا شدن در رنگارنگ رنگ و متنوع شدن است کسی راه پیش انسان ها نمیگذارد. راهبر نیست در یک راهی بلکه مغز خدایی ما در راهی که خودش می خودش راه می شود و دگردیسی می آبد به این راه خدا می شود یک تنبوی از گوهر خدا می شود راه و گردونه جادهای در خارج ما نیست همه باید با همدیگر آن را بپیماید ببینید مفهوم شریعت و ایدئولوژی و این مکاتب فلسفی با این تفکر ایرانی یک دنیا فرق دارد ما دنبال تجدد و پیشرفت می رویم. این افکار چی هستن احتیاج به اون تجدد و پیشرفتی که تقلیدیش نداریم این افکار خودش دارای این محتویات هستن اینجا بحث طرق الاله نیست بلکه خدا که ارتا باشد بین الاله نه؟ اصلا مساله الاله نیست خدا در انسان هست ارتا در انسان هست بحث طرق الاله نیست بلکه خدا که اردا باشد عنصر نوقاستین جان هر انسانی هست انسان در راهی نمی‌روَد که پایانش به خدا میرسد بلکه خدا در خود انسان از همان ابتدا هست فقط این تحولات که انسان این راه خداست راه پیدایش خدا در هر فردیس به عبارت دیگر قایت و مقصد و مراد در خود انسان هست فقط مسئله دگردیسی و متاپورفود و جامع گردانی این اونطور نخستین در هر انسانی هست انسان این راه معنای تحبول و متامورفوز و گشتن خود انسان را دارد. این یابی انسان راه است. ساختن یک خیابان یا جاده عمومی برای همه نابود ساختن اصل فردیت و عرج انسان هست. که در همون وجود تخم آتش یعنی ارتا، رتا، راه در جان هر انسان است. اینجا، مسئله پیمودن پیمودن راه درازی که توی از خدا هست به سوی خدا در پایان راه نیست که ما در اونجا چی؟ در اونجا فقط به مراقات خدا نائل میشیم به لغاق الله میزیم پیش خدا در اونجا جدا از خدا قرار میگیریم ببینیم این به کلی مفهومه این ما در خدا در ما تحول میابد این را میگوین راه مسئله تحولیابی خدا در خود انسان هست اینجا کسی نمیخواهد در پایان راه به پیش خدا به حضور خدا برسد تئوری زرد دیگری هم همین است. شما به پیچ اهور آمدتا میرسید بل این فرهنگ ایران چی میگرد؟ میگرد خدای نهفته در بون و پترت عرد انسانی در جنبشت گردیسی میابد میرقصد و تازه نو میشود ارتا که همون فروهر هر فر و هر فر برده فرا برده ورته چیز؟ گشتن است ورته که همون کلمه گردیدن ماست ورتن گردیدن است گشتن است در ای وشتن است یعنی پره وشی. وشتن است در گشتن می وشتن. این وشتن شی شده؟ یعنی می رخصاد. این کلمه وشت در عربی شده است وجد تا تبدیل شده است به وجود انسان به وجد می آید انسان وجد وشت می شود انسان موجود می شود وجود یافتن در رقص است خدا در رقص این تحول را به سوی خدا شدن در خود انسان می آبد ارتا خدا که در پرهنگ ایران بون آفریننده و سامانده در هر انسانی هست در پیدایش متنوع می شود تیف رنگین می شود یا به عبارت دیگر هرگز یک راه راست یک آموزه حقیقت یک شریعت یک مسلک تنها شکل حقیقی تنها حقیقت منحصر بفرد نمی شود بلکه چون خدا این اصل قائم به ذات یعنی از خود بودن بون جان هر انسانی است راهی دیگر می شود. این راهها همه تنوع خدا هستند، تنوع یک حقیقت هم. حقیقت رو در اصل که باهید از نادیدنی و ناابنش در تنوع پیدایش می آباد. ما اون حقیقت بنیادی رو نمی توانیم. بگیریم و نمی ببینیم اما در کجا می‌بینیم؟ در تنوعش، در انسان‌ها، در فرهنگ‌ها، در ملت‌ها. خدا خودش راه و اصل تحول است. نه قایت و مقصد و مراد. در پایان راهی که توهی از خداست. ببینید این راه همه توهی از خداست، فقط اون پایان راه آدم به دیدار خدا میتواند برسد و در پا پایان فقط در پایان این راه تویه از خدا انسان فقط در پیش یا حضور خدا میایستد و او را میبیند ولی هرگز نمیتواند با او هم همگوهر بشود یعنی او بشود در این فرهنگ خدا در فرهنگ ایران خدا که مستقیما بن و طبیعت در هر فرد انسانی است خودش همراه و هم گردونه هست و انسان نیاز به هیچ شریعتی و ایدئولوژی و مکتبی و مذهبی و مسلکی ندارد بر پایه چنین تصویری از فردیت جمهوری ایرانی می شود این یک فرهنگ جهانی و مردمی است و ربطی به ناسیونالیسم که خیلی خیال می کنند که ایرانی گرایی یک ناسیونالیسم است ندارد و درست فرهنگ ایران فرهنگ جهانی و مردمی است که اصلا فراسوی ایده ناسیونالیسم است